مرحوم شیخ توسی در قده یه عبارتی داره ایشون میگه که طایفه به روایات علی ابن عبی همزه عمل میکنن البته با دو شرط. مثل روایت های غیر،, غیر امامی ها رو به شرطی که با روایات امامی معارض نباشه با فتاقای امای معارض نباشی به اینا عمل میکنه و این رو گزارش میده که طایفه روایت های علی بن عبی حمزه رو بهش عمل میتونه به نظر میرسه که این گزارش شیخ توسی در مورد عمل به روایات علی بن عبی حمزه نمیتواند این طریق مشهور رو شامل نشه جز مشورتنی کتاب طایفه کتب حسین بن سعیده و حسین بن سعید هم طریق اصلیش به علی ابن عبی حمزه از طریق همین قاسم بن محمد جوهریه چاید بالای نوت درصد روایت های حسین بن سعید از علی ابن عبی حمزه از طریق همین قاسم بن محمد جوهریه بنابراین این به نظر میرسه طائفه بر های علی ابن ابی حمزه که از طریق قاسم ابن محمد جوهری هم وارد شده عمل کردند. حالا اینکه طائفه عمل کردن به چه جهت عمل کردند؟ ممکنه به خاطر این بوده که تایفه قراینی در اختیار داشتند که قاسم ابن محمد جوهری قبل از وقت از علی بن عبی حمزه اخذ حدیث کرده اصلا مثلا علی بن عبی حمزه بعد از واقفه شدن دیگه مشکل درگیری ها و دعوا و کدککاری ها و اینها بوده یه اصلا فرصت مثلا تحدیث و امثاله نمکنه نداشته باشی این احتمالش هست احتمال این هست که اصلا اینا علی بن عبی حمزه و قاسم محمد جوهری در طریق به عبی بصیر بود واقع شده باشن یعنی این مواردی هست که از کتاب عبیبتیر مثلا نخص شده باشه و تاریخ به هر حال یک تقریبا تشریفاتی طوری مثلت داشته این احتمال هم داره احتمالی که مرحوم حاجی نوری مطرح میکنه که علی ابن عبی حمزه بعد در وقفش هم ثقه بوده البته در غیر امور مالی که ما میگفتیم دلیل بر اثباتش نداریم که ثقبت حواهر بود دلیل بر نفسش هم نداریم ما دلیل بر اثباتش نداریم دلیل بر نفسش هم نداریم این که تایفه بر روایت های علی بن ابی حمزه عمل کردند یک نوع شهادت به اعتبار این روایات است این شهادت شهادتی هست که می تواند انحسن باشد به جهت بساغت علی بن ابی حمزه بعد از وقف یا به جهت اخذ حدیث قبل از وقف و به ساقت علی ابن عمی همزه قبل از وقف یا به جهت این که اصلا این روایت ها تشریفاتی بوده و مثلا از کتاب عبیبتیر اخذ شده و این طریق طریق تشریفاتی بوده این مجموعه به هر حال به نظر می با توجه به شهادت شیخ توصی. به اعتبار روایت علی بن عبی حمزه ولو با اون دو شرط ما باید روایت های علی ابن عبی حمزه رو با اون دو شرط البته اینو رو کسرم زنیمه بکنم با توجه به این راه حلی که دنبال میکنیم بین مواردی که راوی از علی ابن عبی حمزه مثلا ابن عبید و امیر و صفوان و اینها باشه و بین مواردی که راویش قاسم بن محمد جوهری باشه فرق خواهد بود در اون چی است ما استظهارمون به تبع مرحوم شیخ بهایی در مورد مواردی که ابن عدی امیر صفوان اولی ابن عدی حمزه نقل میکنن اینه که اینا قبل از وقفه بعد از وقف اولی ابن عدی حمزه اختصاریف نمیکردند پس این روایت های علی بن عبی حمزه چه از طریق ابن عبی و صفوان و اون گروه از امامی نقل شده روایت های صحیحه تلقی میشه. چون بعدا بعدن علی ابن عبی حمزه منحرف شده اون مشکلی ایجاد نمی کنه. ولی روایت های قاسم بن محمد جوهری رو باید موسطق تلقی. چون ما دلیلی که داریم اقامه میکنیم از طریق شهادت شیخ طوسیه و شهادت شیخ طوسی تنها علی بن ابی همزه رو بعد از رثفش میخواد بگه طایفهیش عمل میکردن حالا ما احتمال میدادیم خیلی وقتا شیخ توصی نکته قضیه رو نگرفته که خیلی وقتا علی بن ابی همزه رو که عمل کردن به خاطر عرض کنم این بوده که قبل از وقت به هر حال ازش عخص کردن قاسم محمد جوهری هم ممکنه قبل از وقت باشه ولی چون دلیل نداریم احتمال داره مول بعد از وقت باشه علی بن عبی همزه داشته بنابراین روایت های قاسم محمد جوهری از علی بن عبی همزه یا به در حکم موسطه است. چون احتمالات متعدد در مدش هست احتمال داره مول قبل از وقت باشه احتمال باشه، برگرفته از کتاب عبی بسیر باشه، طبق این دو احتمال میشه سعیه، احتمال باشه، مال بعد از وقت باشه، علی ابن سقه باشه، این میشه موستقه، نتیجه تابع اخص مقدمات اخ... اخص احتمالاته، در نتیجه به نظر میشه این روایت رو ما باید در قکم موستقه بدونیم.